فصل پنجم قربانیان مشهور تفتیش عقاید با وجود مجازات‌های دهشتناکی که دستگاه تفتیش عقاید اعمال می‌کرد و وحشتی که می‌آفرید سرانجام موفق نشد مردم را از تفکر مستقل باز دارد مردان و زنان دلیر اختدار دستگاه تفتیش عقاید را حتی در اوج قدرتش زیر سؤال بردند گروه های کوچک مذهبی از تشکیل باز نایستادند و رشد اندیشه علمی دوچار توقف نشد و شاید مهمتر از همه تمایل مردم ساده و معمولی به یافتن مسیر مستقل خود به سوی آرامش دینی از بین نرفت با دستگاه تفتیش عقاید در اواخر سده چهاردهم، و در طول سده‌های 15 و به ویژه در سده 16، چالش‌ها به سرعت افزایش یافت. در آن دوران، کلیسای روم که در اوایل سده سیزدهم به اوج قدرتش رسیده بود، مدتها بود که دچار انحطاط اخلاقی شده بود. به گفته تاریخدان جفری بورتون راسل، مقام پاپی به تدریج جایگاه خود را در مرکز جامعه‌ی مسیحی از دست داد. این نبود که پاپ‌های خوب و قابل وجود نداشتند یا نظریه پردازانی نبودند که از برتری پاپ دفاع کنند بلکه شرایط سیاسی، اجتماعی و فکری گزینه‌های دیگری را میطلبید و به نظر می‌رسید که شرایط به وجود آمده آن گزینه‌ها را موجه و پذیرفتنی می‌ساخت. اصول اقتدار پاپ مقام پاپی یک رشته ضربات شدید سیاسی را نیز متحمل شد. که اقتدارش را تضعیف کرد. پاپ بونیفاسیوس هشتم در سال 1303 رو بوده شد. پاپ کلمنس پنجم که در روم از سوی یک گروه خشن مورد تهدید قرار گرفته بود، مقر پاپ را به آوینیون منتقل کرد که از سال 1309 تا سال 1378 در آنجا باقی ماند و ابزار دست پادشاهان فرانسه شد. این دوره را دوره اسارت نامند. که یادآور نقل مکان یهودیان باستان از سرزمین مادریشان در فلسطین به بابل است. سپس از سال 1378 تا سال 1415 دوره است که به شقاق بزرگ معروف است و طی آن دو پاپ وجود داشت. یکی در فرانسه و یکی در روم. منظره ی دو رهبر دینی درگیر کشمکش سیاسی و در تلاش برای تکفیر یک دیگر از اعتبار مقام پاپی در میان سیاستمداران، مداران، دانشوران و سایر مردم از همه طبقات و اخشار بسیار کاست وضعیت هنگامی از این هم بدتر شد که برای مدت سه پاپ وجود داشت یکی با میانش در روم، یکی با میانش در آوینیون و یک نامزد بینابین که از سوی شورایی که در سال 1410 در پیزا تشکیل شده بود برگزیده شد سرانجام در پایان قرن پانزدهم نظام پاپی را بی, بی کفایتی و فساد بی‌سابقه ای در بر گرفته بود. این شرایط توانایی کلیسا را در واداشتن مؤمنان به پیروی از معیارهایش در مورد سنت دینی به شدت مورد تهدید قرار میداد. با وجود این، کلیسا به اعمال قدرت دستگاه قدرتمند تفتیش عقایدش برای تقویت اقتدار رو به کاهشش ادامه داد هرچه چه کلیسا ضعیفتر می میشد دستگاه تفتیش عقاید به طور فزاینده ای کسانی را که مخالفتشان در عرصه‌های سیاسی یا علمی و نه اعتقادی بود به بدعتگذاری متهم میکرد. این تا حدی از آنجا ناشی میشد که در های پس از اینو کنتیوس سوم کلیسا به از دست رفتن اختدار اخلاقی با مقابله به مثل کردن با کسانی که آنها را مسئول می‌انگاشت، واکنش نشان می‌داد. اما این نیز حقیقت داشت که کلیسا بر ابزاری که خود به وجود آورده بود، همواره کنترل نداشت. دستگاه تفتیش عقاید در اکثر موارد اسلحه‌ی کسانی شد که از اختیار اداره مقدس در جهت مقاصد خودشان استفاده می‌کردند و اینان هم مقام‌های فاسد کلیسا بودند. و هم سیاستمداران مداران که غاالاً بر امور کلیسا تسلط داشتند در نتیجه بسیاری از افراد و گروهها به دلایلی که ارتباط چندانی با درستی عقاید دینیشان نداشت قربانی دستگاه تفتیش عقاید شدند حتی در نخستین سالهای موجودیت دستگاه تفتیش عقاید کلیسا در رسیدگی به برخی از موارد بدعتگذاری، رفتاری مزورانه و خودخواهانه داشت اما این انحراف گهگاهی و موردی اوایل قرن سیزدهم به گرایشی آشکار و قطعی به تندرو در قرن چهاردهم تبدیل شد والدوسیان نمونه اولی ای از آنچه بعدها به مشخصه عادی دستگاه تفتیش عقاید تبدیل شد در رفتار کلیسا با پتروس والدوس، بازرگان سروتمند اما بی سواد اهل لیون فرانسه هو داشت. در حدود سال 1170، والدوس با خبر شد که انجیل به فرانسه ترجمه شده است. اطرافیان والدوس اینک میتوانستند انجیل را برای او به زبان خودش بخوانند. در گذشته تنها کسانی که در لاتین مهارت داشتند میتوانستند انجیل را بخوانند. این بدان معنا بود که اینک کاتولیک های معمولی نه فقط کشیشان تحصیل کرده شروع به مطالعه انجیل و تعلیم و تبلیغ کلام خدا بدون اختدار کلیسا میکردند. والدوس با الهام از درک تازه ای از زندگی مسیحیان نخستین از تمام دارایی دنیاوی خود دست کشید و فقر اختیار کرد و شروع به معظ به روش خودش نمود. پیروان مخلص بسیاری پیدا کرد که همه آنها فقر اختیار کردند و در خیابانها و دیگر معابر عمومی به موعزه پرداختند. پیتروس والدوس و پیروان مشتاقش والدوسیان یا مسکینان لیون چون عقیده داشتند هر مرد نیکی حق شنیدن اعترافات را دارد سرانجام با برخی از شعائر کلیسا به مخالفت برخواستند. باعث رنجش کشیشان محلی و اسقف شدند. والدوسیان خشم کلیسای عمومی را نیز برانگیختند و در سال 1179 سر اسقف لیون آنها را از موعظه من کرد. بسیاری تکفیر شدند و برخی به بدعتگذاری متهم گشتند. برخی از والدوسیان فرانسه را ترک کردند و به اسپانیا رفتند و در آنجا به موعظه ادامه دادند. در آنجا آنها را زندانی کردند. در دادگاه‌های تفتیش عقاید به محاکمه کشیدند و چندین تن را در سال 1212 در آراگون در چوبه مرگ سوزاندند. از جمله جنبه‌های شگفتانگیز اقامه دعوا علیه والدوسیان این بود که آنها برخلاف کاتارها بدعتگزار نبودند. عقایدشان کاملا در چوبه جریان غالب سنت مسیحی باقی ماند. چون تلاش آنها بازگشت به شکل نخستین و خالصتر مسیحیت بود در واقع آرای پتروس والدوس از بسیاری جهات پیشگویی آرای دومنیکنها و های اوایل قرن سیزدهم بود که شکنجه‌گر آنها شدند والدوسیان برای کلیسا خطرناک بودند چون از وجدان خود پیروی می‌کردند آنها از پذیرش قاعده فرمان برداری امتنامی ورزیدند که برای کلیسا اگر قرار بود تسلط خود را بر جامعه حفظ کند، خطرناک بود. مسکینال لیوم به خاطر این استقلال روحی به عنوان دشمنان کلیسا محکوم شدند. با این حال، والدوسیان برخلاف کاتارها که سرانجام از بین رفتند، به رغم تلاش‌های مکرر دستگاه تفتیش عقاید برای حذفشان در گروه‌های کوچک به موجودیت خود ادامه دادند و همچنان موعظه کردند. آنها به صورت دست دسته دست در بسیاری از نواحی کوهستانی ایتالیا تا دوره اصلاحگری پروتستان در قرن 16 هم باقی ماندند در واقع امروزه هم کسانی هستند که خود را والدوسیان به حساب می‌آورند سرنوشت گروه فراتیچلی گروه دیگری که دشمنی دستگاه تفتیش عقاید را برانگیخت، گروه فرانسیسکن‌های روحانی یا فراتیچلی بودند. آنها ای از فرقه راهبان فروتن بودند یا همان راهبان فرانسیسکن که به دستگاه تفتیش عقاید در نخستین نبردهایش علیه کاتارها کمک کرده بودند. گروه فراتیچلی در دسر بزرگی برای کلیسا به وجود آورد. چون این راهبان مدتها پس از آن که آنها ثروتمند و قدرتمند شده بود، به زیستن بر اساس معیارهای سختگیرانه و نفس شکنی که فرانسیس آسیسی خود را به آن عادت داده بود، اصرار داشتند. گروه فراتیچلی در سال 1294 از پاپ کولز تین پنجم اجازه گرفتند، تا به صورت گوش در فقر مطلق دور از نظارت بالا دستی‌های های فرقه زندگی کنند. آنها جامعه کتاه وصلدار و تیر رنگ بتن می و اهمیتی نمیدادند که غذای روزانه خود را چگونه به دست خواهند آورد. اعتقادشان بر این بود که توجه به رفاه شخصی مغایر آموزه‌های های است. خلوص ایمان اعضای گروه فراتیچلی، و فقر مشهودشان که به زندگی نخستین آبای کلیسا بسیار شبیه بود، بی اعتنائی آشکاری بود به ثروت فضاینده و جلو فروشی کلیسای قرن چهاردهم. زمانی که بسیاری از مقامات روحانی در ناز و نعمت زندگی می کردند و خامیان اطرافشان را گرفته بودند. اسقف و رؤسای سومه ها غالباً به شدت درگیر تعلقات سیاسی بودند، و به توجهی به امور معنوی و روحانی گرایش داشتند. در چنین شرایطی کلیسا نگران مقایسه رهبرانش با گروه فراتیچلی در انظار عمومی بود. سرانجام در سال 1317 پاپ یوانس دوم از مقرش در آوینیون به دستگاه تفتیش عقاید در فرانسه دستور داد برای سرکوب گروه فراتیچلی که آن را تهدیدی نسبت به وحدت مذهبی کلیسا می دانست اقدام کند. دادگاه تفتیش عقاید فرانسه گروه فراتیچلی را به بدعتگذاری متهم و محاکمه کرد. بسیاری از اعضای این گروه به داشتن عقاید بدعت‌گذاران مقصر شناخته شدند و در سال 1318 در مارسی در چوبه مرگ سوزانده شدند. اینکه عقاید دینی آنها به واقع با سنت رایج کلیسا همخوانی کامل داشت، هرگز مورد توجه واقع نشد. جرم واقعی گروه فراتیچلی این بود که مانند والدوسیان از خود استقلال روحی نشان داده بودند که اختدار مطلق کلیسا را به مخاطره میانداخت. از این رو کلیسا از دستگاه تفتیش عقاید برای نابودی آنها استفاده کرد. دستگاه تفتیش عقاید نیز با بدعتگزار و آشوبگر معرفی کردن این گروه توانست بسیاری از مردم را متقاعد کند که از میان برداشتن این راهبان به نفع کلیساست. شهرساران پرستشگاه در قرن چهاردهم دستگاه تفتیش عقاید از نقش خود در تقویت سنت دینی باز هم فاصله گرفت و در مبارزه بین کلیسا و رهبران سیاسی اروپای غربی به یک آلت دست تبدیل شد. این موضوع آشکارتر از همه در ماجرای انگوشت نمای سواران پرستشگاه یک فرقه نظامی مذهبی که به واسطه نقشش در نخستین جنگهای صلیبی اهمیت زیادی کسب کرد نمایان شد. سواران در اصل ارتش منظمی بودند که از مسیحیان ساکن سرزمین مقدس و همینطور زائران بسیاری که در قرن دوازدهم و بخش امده قرن سیزدهم از سراسر اروپا به آنجا سفر می محافظت می نمودند. شه سواران مانند دومینیکنها و فرانسیسکنها به پاپ وفادار بودند. این رابطه آنها را خارج از کنترل فرمانروایان سیاسی قرار می داد و بر قدرت کلیسای روم می افزود. طی سالها شهسواران بسیار ثروتمند و قدرتمند شدند، چون به ازای خدماتی که در جریان جنگ‌های صلیبی ارائه دادند، دارایی بسیار زیادی به دست آوردند. در سال 1991 که بندر عکا واقع در شمال غربی اسرائیل کنونی به دست اعراب مسلمان افتاد، اکثر شهسواران در دفاع از آن در سرزمین مقدس جان سپردند کسانی که زنده ماندند نخست به جزیره قبرس عقب نشستند و بعد در املاک وسیع خود که در سرتاسر سر اروپا پراکنده بود اقامت گزیدند ثروت و دانش آنها در امور دنیا که به آنها اجازه می‌داد به عنوان بانکداران بین المللی نقش مهمی ایفا کنند حسادت بسیاری از فرمانروایان به ویژه فیلیپ زیبا پادشاه فرانسه را برانگیخت مشکلات مالی فیلیپ را مجبور کرده بود مدیریت خزانه فرانسه را به شهسواران که مقدار متنابهی پول نیز از آنها قرض کرده بود واگذارد فیلیپ از اعمال نفوذ کلیسای کاتولیک در امور داخلی فرانسه ناراحت بود و این اعمال نفوذ را با وفاداری مستقیم شهسواران پرستشگاه به پاپ تا حدی مرتبط میدانست. و فکر می کرد اگر بتواند بر شهسواران پرستشگاه غلبه کند خواهد توانست به ثروت آنها دست یابد قرصهایش را منتفی سازد و همزمان با آن از نقش دستگاه پاپی در امور فرانسه بکاهد از این رو علیه جاک دوموله پیشوای بزرگ فرقی شهسواران پرستشگاه مشغول توطعه چینی شد نخست دوموله را تحت فشار گذاشت که پسر جوان پادشاه را به ریاست این فرقه برگمارد اما هنگامی که تلاش‌هایش به جایی نرسید، تصمیم گرفت این فرقه را به کلی نابود سازد از آنجا که اقتدار شهسواران از پاپ ناشی میشد، فیلیپ برای عملی کردن نقشهاش به همکاری پاپ نیاز داشت شگفت آنکه معلوم شد کسب این مساعدت نسبتاً آسان است چون پاپ که در آوینیون اقامت داشت تحت کنترل پادشاه فرانسه بود. پاپ کلمنس پنجم برخلاف اصلاف قدرتمندش اینو کنتیوس سوم و گیر گوریوس چهار پاپ بسیار ضعیفی بود که شهروندان شورشی که میکوشیدند در شهر پاپ اصلاحات سیاسی به عمل آورند او را از روم بیرون رانده بودند. بنابراین، کلمنس که فاقد پایگاه قدرت سیاسی مستقل بود توان مخالفت با فیلیپ خوبرو را نیز نداشت دستگاه تفتیش عقاید علیه سواران پرستشگاه دست به کار می شود. کلمنس پنجم که به لحاظ سیاسی ناتوان و به خاطر سرطان شکم ضعیف شده بود مجبور شد به اتهام بدعتگذاری که نخست شاه فیلیپ در سال 1307 علیه شهسواران سواران پرستشگاه مطرح کرد، ترتیب اثر دهد. پاپ با اکراه به مسئول دستگاه تفتیش عقاید پاریس دستور داد علیه شهسواران اقدام کند. در یک حمله بسیار هماهنگ و غافلگیر کننده، تقریبا همه شهسواران در فرانسه بازداشت شدند و تمام خانه جستجو شد. رئیس فرقه، ژاک دو و مهمترین قائم مقامش در فرانسه به زندان تفتیش عقاید انداخته شدند. بین سالهای 1307 و 1314، دستگاه تفتیش عقاید فرانسه با اطلاع مقام پاپی یک رشته محاکمات ننگین به سود پادشاهی فرانسه برپا کرد. خود ژاک دو را آنقدر شکنجه کردند تا به بدعتگذاری اعتراف کرد. وقتی دیگر شهسواران دیدند که چه ولایی بر سر رهبرشان آمده، آنها نیز اعتراف کردند به امید آنکه رفتار ملایمتری با آنها صورت گیرد. اما اسناد دستگاه تفتیش عقاید نشان میدهد که در پاریس 36 شاه سوار در زیر شکنجه جان سپردند. در حالی که در سن زندان دیگر دستگاه تفتیش عقاید 25 نفر دیگر در زیر بازجویی جان باختند. پونسار دوگیزی که در سن مورد بازجویی قرار گرفت، در مورد آزمون سخت گزارش داد. سه ماه پیش از اعترافم دستهایم را از پشت چنان محکم بستند که خون از پشت ناخونهایم بیرون زد. و آنگاه بود که به مفتشانم گفتم که اگر باز هم مرا در معرض چنین این شکنجه قرار دهید، هرچرا که الان میگویم انکار خواهم کرد. هرچه شما بخواهید میگویم میکویم، به هر مجازاتی در دهم تنها به شرطی که کوتاه باشد. دوموله و بسیاری از شهسواران دیگر را به مقامات عرفی تحویل دادند و به عنوان بدعتگزار در چوبه مرگ سوزانده شدند. نابودی شهسواران پرستشگاه نشان میدهد که چطور فرمان روای اوان فریب، از فقدان نظارت شدید دستگاه پاپی بر عملکرد دستگاه تفتیش عقاید سوء استفاده کرد و تشکیلات قدرتمند آن را در جهت مقاصد خود به کار گرفت در مورد شهسواران پرستشگاه هیچ یک از اصول دین در معرض خطر نبود تنها هرس و آز تعیین کننده رفتار پادشاه فرانسه بود دستگاه تفتیش عقاید در فرانسه که زیر نظارت پاپی ضعیف عمل می کرد، قادر نبود در برابر پادشاهی مسمم ایستادگی کند و چون این مجازاتهایی را به جرم بدعتگزاری علیه این افراد بیگناه وز کرد تا ثروت آنان را بگیرد. یکصد سال بعد دستگاه تفتیش عقاید در فرانسه باز هم در یک اقدام سیاسی دیگر که هیچ شأن مذهبی نداشت مدعی یکی از مشهورترین قربانیانش جندار دوشیزه اورل آن شد.